سلام من فتانا هستم و شما به قسمت پنجم از فصل اول قصه‌های برای خواب های بنفش رادیو هجده بنفش گوش میکنید بخش پنجم. جارد کتابی میخواند و طلهای میگذارد وقتی جارد ملوری و سیمون را پیدا کرد آنها روی چمنها شمشیر بازی می کردند. مویه دنباس ملوری از پشت کلاه شمشیر بازی بیرون آمده بود و جار دید که موها نسبت به گذشته کتاحتر شدهاند و انگار با شمشیر بازی خشن تلاش میکرد کرد زعف قبلیش را جبران کند. سیمون حتی نمی توانست یک ضربه علکی بزند او تا کنار دیوار انبار کالسکه قدیمی و نیمه ویران عقب نشسته بود و دفاعش مدام ناامیدانه تر می جارد با صدای بلند گفت من چیزی پیدا کردم. سیمون سر کلاه پوشیدهش را چرخان. ملوری از این فرصت برای ضربه استفاده کرد و نوک لاستیکی شمشیر تمرین را به سینه سیمون فشار داد. ملوری گفت شدیم سه به سفر من تو رو له کردم من تو رو شکست دادم سیمون با اعتراض گفت تو تقلب کردی ملوری پاسخ داد خودت گذشتی حواست پرچه سیمون کلاهش را از سرش برداشت و روی زمین انداخت و به جارد نگاه کرد و گفت خیلی ممنونم جارد خود به خود گفت ببخشید سیمون با اخم گفت همیشه تو با اون تمرین شمشیر بازی میکنی من بیرون اومدم تا بچه قورباغه بگیرم. جار پاسخ داد: من خیلی کار دارم. اینکه چند تا حیوان ابله و کدن ندارم تا ازشون مراقبت کنم به این معنی نیستش که کار دیگه‌ای هم ندارم. ملوری گفت: هر دو ساکت. او کلاهش را برداشت. صورتش قرمز شده بود. پرسید: تو چی پیدا کردی؟ جار سعی کرد بخش از هیجان قبلیش را دوباره حس کند. گفت: کتابی زیر شیربونی درباره جن و پریاست جن پریای واقعی ببینید اونا خیلی زشتند ملوری کتاب را از دست او گرفت و نگاهی به آن انداخت و گفت این کتاب بچه هاست کتاب قصه است جارد با لحنی دفاعی گفت اینطور نیست این یه کتاب راهنما و معرفه مثل کتاب پرندهها اینطوری میتونی انواع اونا را تشخیص بدی ملوری پرسی تو فکر میکنی یه جن موهای منو به تختم گره زده؟ ماما فکر میکنه تو این کارو کردی. اون فکر میکنه از وقتی بابا ما رو ترک کرده، تو خیلی عجیب شده. مثلا اون همه دعوایی که تو تو مدرسه راه انداختی، سیمون چیزی نگفت. جار برای اینکه نظر خواهرش را بداند گفت؟ اما تو که اینطور فکر کنی تازه تو خودت همیشه در حال جنگ و دعوایی. ملوری نفس عمیقی کشید و گفت: من فکر نمی کنم تو اونقدر احمق باشی که چنین کاری بکنی و همزمان مشتش را بالا آورد تا نشان دهد بر سر کسی که آن کار را کرده چه بلایی خواهد آورد و اضافه کرد اما فکرم نمی کنم که کار جن باشه موقع شام مادرشان در حالی که مرغ و پوره سیب سیبزمینی در بشقابهایشان می کشید به طور عجیبی ساکت بود میلوری هم چیز زیادی نمی گفت اما سیمون یک ریز درباره بچه قرباقه که پیدا کرده بود حرف زد و اینکه چطور خیلی زود آنها تبدیل به قرباقه می شوند. چون همین حالا هم دستهای کوچکی دارن جارد آنها را دیده بود بچه گرباقه ها برای بزرگ شدن راه درازی در پیش داشتند. چیزی که سیوان اسمش را دست میگذاشت بیشتر شبیه باله های ماهی بودند. سرانجام جارد گفت مامان، ما فامیلی به نام آرتور داریم مادرشان سرش را از روی بشقابش بلند کرد با شک به او نگاه کرد و گفت نه فکر نکنم چرا این سال پرسیدی جارد منمن من کنان گفت فقط فکر میکردم اسپایدر وگ چطور مادر گفت این نام خانوادگی خاله لوسینداست این اسم خانوادگی دوران دوشیزگی مادرم بود شاید آرتورم یکی از اقوامشون بوده حالا برای چی مطلب مطلبو بدونی جارد گفت من چند تا از وسایلش رو زیر شیروانی پیدا کردم فقط همین مادرش که نزدیک بود چای سردش را بریزد گفت زیر شیروونی جارد گیریس خودت میدونی که نیمی از طبقه دوم طوری پوسیده که اگه پات رو جای اشتباه بذاری از زیر زمین سر در میاری جارد با اعتراض گفت من روی طرف سالمش بودم مادر مستقیم به جارد زل زد و گفت ما مطمئن نیستیم که زیر شیروونی طرف سالمی هم داشته باشه نمیخوام هیچکس اون بالا بازی کنه به خصوص تو جارد لبهایش را گاز گرفت بعد تا آخر شام حتی یک کلمه دیگر هم حرف نزد سیمون پرسید میخوای تمام شب این کتاب رو بخونی؟ او توی اتاقشان در طرف خودش نشسته بود. جفری و قطر لیمون روی راحتی میدویندند و بچه قرباقه های جدیدش هم در ظرف شیشه ماهی ورج ووجه میکردند. جارد گفت اگه این کار بکنم چی؟ او با هر برق کهنه کتاب حقایق عجیب تازهی را یاد میگرفت. یعنی ممکن بود در خانه آنها هم جن وجود داشته باشد. در حیاتش جن و پریهای بازیگوش باشند و در نهر پشت خانهشان هوریهای دریایی کتاب این چیزها را خیلی واقعی نشان میداد نمیخواست فعلا با کسی حرفی بزند حتی با سیمون فقط دلش میخواست به خواندن ادامه دهد سیمون گفت نمیدونم فکر کردم شاید حصلت سر رفته باشه تو معمولا علاقه به خوندن کتاب نداشتی جهارد سرش را بلند کرد و پلک زد درست بود سیمون کتابخان بود جارد بیشتر خودش را به دردسر میانداخت او کتاب را ورق زد و گفت منم اگر دلم به خود میتونم کتاب بخونم سیمون خمیازه ای کشید و گفت از اینکه به خوابی میترسی منظورم درباره اتفاق اتفاقی که شب بیفته جارد کتاب را به عقب ورق زد و گفت اینو ببین نوعی جن وجود داره که اسمش جن خانه یا جن خانه داره سیمون گفت مثل دخترای چرت نمیدونم مثل این ببین او صفحه را جلوی سیمون گرفت روی کاغذ زرد تصویر مردی کوچک با جوهر کشیده شده بود با یک گردگیر پر که از پر توپ تون و یک سوزن درست شده بود کنارش تصویر موجودی خمیده بود این یکی هم کوچک بود اما تکی شیشه شکسته در دست داشت سیمون که ناخودآگاه کنجکاف شده بود تصویر دیگری را نشان داد و پرسید این چیه؟ جارد گفت آقای آرتور میگه که این یه جن شروره ببین جن خوندار کمک میکنن و مفیدن اما اگر اونا را عصبانی کنی دیوونه و وحشی میشم کارهای بدی هم انجام میدن تو نمیتونی اونا رو متوقف کنی و جلوشونو بگیری بعد اونها شرور میشن من فکر میکنم ما همچنین چیزی توی این خونه داریم سیمون پرسی تو فکر میکنی ما با خراب کردن خونشون عصبانی کردیم جارد گفت بله شاید یا شاید هم قبل از اون شرور شده باشه منظورم اینه که این یکی رو ببین و جنه را نشان داد این از اون نوعی نیست که توی یه خونه زندگی کنه که با سوسک مرده تزین شده باشه سیمون سرتکان داد و به تصویرها نگاه کرد و گفت چون کتاب رو توی این خونه پیدا کردی فکر میکنی جن شرور ما این شکلی باشه جارد با آرامی گفت اصلا به این موضوع فکر نکردم شاید هم این شکلی باشه سیمون پرسید توی کتاب گفته که ما باید چیکار درباره های متفاوتی گرفتن جنا چیزایی گفته نه اینکه واقعا اونا رو بگیریم بلکه برای دیدنشون یا مدرک و شواهدی به دست بیاریم سیمون با تردید گفت جارد مامان گفت در رو ببندی و همینجا بمونیم دلش نمیخواد کاری کنی تا باور کنه که تو به ملاری همده کردی جارد گفت اما مامان به هر حال فکر میکنه که من اون کارو کردم اگر امشب اتفاقی بیفته اون فکر میکنه این هم کار منه سیمون گفت نه چنین فکر نمیکنه. من به او میگم تو تمام شب اینجا بودی تازه به این ترتیب مطمئن شیم که برای هیچ کدوم از ما اتفاق نمیفته جارد پرسید ملوری چی؟ سیمون شانه ای بالنداخ و گفت من دیدم که اون با یکی از شمشیراش به رخت خواب رفت من که حاضر نیستم سر به سرش بذارم جارد گفت درسته درسته. روی تخت خوابش دراز کشید و دوباره کتاب را باز کرد و گفت من میخوام کمی بیشتر بخونم سیمون با سر موافقت کرد و بلند شد تاموشها را در ظرف شیشهیشان بگذارد بعد به رخت خوابش رفت و ملحفه را روی سرش کشید و آهسته گفت شب خیر جار در حالی که میخواند هر صفحه او را به عمق بیشتری از دنیای عجیب جنگل و رود و نهر دنیای زنده با موجوداتی که چنان نزدیک به نظر می رسیدن که انگار می توانست پهلوهای لیز و فرزهای خوریهای دریایی را لمس کنند می توانست گرمای نفس قول را حس کند و صدای پودک های آهنگری کتوله ها را بشنود وقتی آخرین صفحه را برق زد نیمه شب بود. سیمون ملحفه ها را دور خودش پیچیده بود و فقط بالای سرش دیده میشد جارد با دقت گوش کرد اما تنها صدای داخل خانه زوزه باد در سقف بالای سرشان و خرخر آب در لوله ها بود هیچ صدای جیغ یا حرکتی به گوش نمی رسی. حتی حیوانات سیمون هم خواب بودند. جار کتاب را ورق زد تا به صفحی رسید که می گفت جنهای شرور از شکنجه کسانی که زمانی از آنها محافظت می لذت می برند و باعث می شوند که شیر فاسد شوند درها محکم بسته شوند سگها بیهوش شوند و کارهای بدخواهانه دیگری هم انجام شوند سیمون حرف او را باور کرد دست کم تا حدودی اما ملوری و مادرشان حرفش را باور نمی کردن. علاوه بر این او و سیمون دوالوی همسان بودند. تا باور سیمون هیچ ارزش و اهمیتی برایش نداشت جارد به پیشنهاد کتاب نگاه کرد ریختن شکر و آرد روی زمین شیوه ایست برای به دست آوردن رد پا اگر او رد پاها را نشان می داد، آن وقت آنها باید هر را باور می کردن. جارد در را باز کرد و آهسته به طبقه پایین رف داخل آشپزخانه تاریک و همه جا آرام و ساکت بود پاورچین پاورچین روی چوب‌های سد کف اتاق به طرف محلی رفت که مادرش آرد را آنجا گذاشته توی یک صرف شیشه قدیمی دهانگوشا او چند مشت آرد برداشت و آزادانه همه جا روی زمین ریخت این آرد زیاد نبود و نمیتوانست که جای پاها چقدر واضح رویشان میماند شاید جن شرور اصلا روی کف آشپزخانه راه نرود انگار تا حالا فقط توی دیوارها راه رفته بود به چیزهایی که درباره جنهای شرور یاد گرفته بود فکر کرد موجوداتی بد اندیش پر از نفرت که به سختی توان از شردش خلاص شد آنها در دوران جنه دار بودن خیلی خوب و مفیدن حاضرند برای کاسه شیر ساده هر کاری انجام دهند شاید جارد سراغ یخچال رفت و کمی شیر توی نلوکی کچک شاید اگر شیر را انجام میگذاشت موجود وسوسه میشد تا از دیوارها بیرون بیاید و رد پایش را روی آردها بگذارد اما وقتی به نلبکی شیره روی زمین نگاه کرد حس بدی به او دست داد اول از همه برای اینکه پایین آمده بود تا برای چیزی که دو هفته پیش شاید باور هم نمی کرد تله بگذارد و این کار عجیبی بود اما علت این احساس بدی داشت این بود که می دانست بودن یعنی چه و می دانست که دوباره راه انداختن چقدر راحت است حتی اگر از دست شخصی دیگر عصبانی باشید فکر کرد شاید جن شرور هم چنین احساسی داشته اما بعد متوجه چیز دیگری شد او موقع رفتن آوردن شیر رد پاگ خودش را تا راه را رو روی زمین باقی گذاشته بود زیر لب گفت لعنتی و رفت جارو را بیاورد که ناگهان چراغ روشن شد و صدای مادرش از بالای پله گفت جارد گریز جارد به سرعت چرخید اما میدانست که ظاهرش گناهکار به نظر میرسد مادر گفت برگرد به خواب جارد گفت من فقط میخواستم چیزی رو اما مادرش اجازه نداد او حرفش رو تمام کند و گفت همین حالا آقا برو بعد از اینکه کمی به این موضوع فکر از اینکه مادرش مزاحمش شده بود خوشحال شد شاید شیبه جنیابی او فکر خوبی نبود جاد از روی شانه به کف پوشیده از آرداش خانه نگاه کرد و بعد با سرعت از پله‌ها بالا رفت. شما به قسمت پنجم از فصل اول هایی برای خواب‌های بنفش رادیو 18 بنفش گوش دادید. شما میتونید ما رو از طریق کانال تلگراممون با نام رادیو 18 بنفش با 18 عددی دنبال کنید. مهربون باشید و شاد و مهربون.